فصل 16 وقتی به آپارتمان برگشتم و در رو بستم احساس می میکردم باید پیشنهاد قهوه درست کردنش رو قبول میکردم و در لحظه حساس لحظه که قهوه را می آورد و خوشحال از تواناییش آن را در فنجان ها می, ریخ می گفتم پول را از کیفت در بیار یا پول را رد کن بیاد در لحظات حساس همیشه اعمال و گفتار بدوی و وحشیانه می شود. آن وقت است که آدم میگوید نصف لهستان مال شما، نصف رومانی مال ما یا بفرمایید دو سوم شلزیان را میخواهید یا نصفش را چهار پست وزارت مال شما و اتحادیه شرکت های مشترکرک منافعه قلات مال ما حماقت کردم که گول وضع و حالمان را خوردم و دستم را به سوی کیف پولش راز نکردم. باید از پول شروع میکردم باید بحث پول را در ترین شكلش که معنای آن برای خیلی از انسانها چیزی جز مرگ و زندگی نیست پیش میکشیدم این پول ابدی مادرم پول را اینطور توصیف میکرد در هر فرصتی که پیش میآمد همین را میگفت حتی وقتی از او سی فنینگ برای خریدن دفترچه مدرسه میخواستیم این پول ابدی عشق ابدی پول آخ به آشپسخانه رفتم یکباری باری کنان بریدم و رویش کره مالیدم به اتاق نشیمن آمدم و شماره بلا بروزن را گرفتم امیدوار بودم که پدرم با این حالی که داشت لرزان از شوکی که به او وارد شده بود نزد معشوقش برود نه به خانه خودمان اینطوری به نظر میآمد که او پدرم را در رخت خواب بخواباند کیسه ی آب جوش برایش درست کند و شیر گرم با اصل به او بدهد مادر وقتی حال کسی بد است روش لعنتی دارد از اراده و مسلط شدن به خود صحبت می کند و مدت هاست که آب سرد را تنها وسیله درمان میداند. جواب داد منزله پروزن بفرمایید برایم خوشایند بود که هیچ بود نمیداد. او صدای زیبا گرم دلنشین و جذابی داشت گفتم شنیر هانس یادتان میآید صمیمانه گفت شما را تا دلتان بخواهد و نمیدانی تا چه حد در رنج شما شریکم نمیدانستم در برای چه حرف میزند وقتی ادامه داد معنی حرفش را فهمیدم گفت فراموش نکنید که تمام منتقدان احمق و خودپسند و خودخواهند نفس عمیقی کشیدم و گفتم اگر می توانستم این را باور کنم حالا روزم بهتر از این بود گفت چرا باور نکنید فقط باور کنید نمی توانید تصور کنید اراده آهنینی که فقط باور می کند چقدر کمک حال انسان است گفتم ولی اگر کسی از من تعریف کرد چه گفت او خندید و تحریر زیبایی به این کلمه داد او آن وقت تصور کنید که او اتفاقا دچار حمله صداقت راستی شده و خودخواهیش را فراموش کرده است <تصفح> خندیدم نمیدانستم. نمی‌دونستم او را بلا صدا کنم یا خانم بروزن ما هم دیگر او و کتابی هم وجود ندارد که آدم به آن مراجعه کند تا بداند باید معشوقه پدرش را چه خطاب کند. آخربات گفتم خانم بلا با وجودی که این اسم مستعار هنری به نظرم به شدت احمقانه میآمد گفتم خانم بلا من در وضع ناراحت کننده قرار دارم. پدرم اینجا بود درباره همه چیز حرف زدیم و من دیگر فرصت نکردم درباره پول با او صحبت کنم. احساس کردم صورتش سرخ شد. آدم با وجدانی به نظر می آمد و باور کردم که رابطه‌اش با پدر بر عشق واقعی بنا شده و چیزهای مربوط به پول برایش ناراحت کننده است. گفتم: "خواهش می کنم گوش کنید. تمام آنچرا که تا کنون توی مغزتان از فراموش کنید. خجالت نکشید. من فقط از شما تقاضا می کنم اگر پدر با شما درباره من صحبت کرد، منظورم این است که شاید بتوانید او را متقاعد کنید که من من سخت به پول احتیاج دارم پول نقد فوری من حسابی بر شکست شدم گوش می گفت بله چنان آهسته گفت که ترس برم داشت بعد شنیدم که آرا بینیش را بالا کشید گفت هانس شما مرا زن بدی می دانید. دیگر به وضوح گریه میکرد کرد موجودی که قابل خریداری است از همانهایی که همه جا ریخته ها شما باید مرا اینطور زنی بدانید با صدای بلند گفتم به هیچ وجه من هرگز در مورد شما اینطور فکر نکردم باور کنید می ترسیدم نکند از روح خودش و پدر شروع به هر صدن کند اگر قرار بود روی حق, حق شدیدش قضاوت کنم بسیار احساساتی بود و بعید نبود حرف ماری را پیش بکشد گفتم حرفم را باور کنید ولی به شک افتاده بودم آنطور که او سعی کرد موجود قابل خریداری را مسخره ادا کند به نظرم مشکوک آمد. گفتم د د د د در واقع من همیشه به شرافت شما ایمان داشتم و هرگز درباره شما فکر بدی نکردم. این حقیقت داشت و از آن گذشته دلم میخواست یک بار دیگر اسمش را صدا کنم ولی نتوانستم این بلای وحشتناک را به زبان بیاورم از آن گذشته من تقریبا سی ساله هم هنوز گوش می دهید؟ گفت بله آهی کشید و پشت تلفنی در گدسپرک چنان حه بلند شد که گویی روی صندلی اعتراف در مقابل کشیش نشسته است گفتم فقط سعی کنید به او بفهمانید که من به پول احتیاج دارم بهت گفت. گمان نمیکنم در این باره توانم مستقیم با او حرف بزنم. او حرف زدن در باره تمام چیزهایی که مربوط به خانوادهش باشد را ممنوع کرده است. میفهمید؟ ولی راه دیگری وجود دارد سکوت کردم حققش تبدیل به لب ورچیدن آرامی شده بود گفت. او گاهی برای کمک به همکاران مبلغی را به من می و دستم را در شکل خرج کردن آن باز می‌گذارد. گذارد فکر نمی کنید شما هم در این شرایط به عنوان کسی که نیاز مبرم به پول دارد استحقاق گرفتن این مبلغ ناچیز را داشته باشید گفتم من واقعا به پول نیاز دارم نه در این لحظه بلکه دست کم به مدت شش ماه ولی خواهش می به من بگویید این مبلغ ناچیز از نظر شما چقدر است صرفه کرد یک بار دیگر اوه گفت که این بار بدون تحریر ماند و ادامه داد این مبلغ برای موارد خاص است مثل وقتی که یکی می میرد مریض می شود یا زنی بچهای به دنیا میآورد. منظورم این است که کمک دائمی نیست بلکه به اصطلاح کمک در موارد خاص است پرسیدم تا چه مبلغ فورا جواب نداد و من سعی کردم خودم حدس بزنم. پنج سال پیش یک بار او را دیده بودم و آن موقعی بود که ماری موفق شد مرا با خودش به اپرا بکشاند. خانم بروزن نقش دختر دهاتی را بازی می کرد که یک نجیب زاده از راه به درش کرده است. من از سلیقه پدرم حیرت کردم. او میان قد و قوی کل بود و به ظاهر بور بود او با پستانهایی که به اجبار برجسته بودند به یک کلبه دهقانی بعد به یک عرابه و آخر کار به یک چنگک تکیه داد و با صدایی زیبا و قوی و حرکاتی ساده و سمیمی آواز خواند صدا زدم نه الو الو گفت آه و این بار موفق به زدن تحریری هرچند ضعیف شد سوالتان خیلی سریح است گفتم این سراحت با وزن من جور در می آید. ترسیده بودم هر قدر بیشتر سکوت میکرد مبلغی که میخواست بگوید کمتر میشد اقبت گفت این مبالغ بین ده تا سی مارک متغیرند گفتم چطور از شما به پدر بگویید کسی را پیدا کرده اید که در وضع ناهنجاری قرار گرفته مثلا تصادف شدیدی کرده است برای چند ماه ماهی حدود صد مارک نیاز دارد این برای تان امکان دارد آهسته گفت عزیز من شما که از من توقع ندارید دروغ بگویم گفتم نه نه نه من واقعا تصادف کردم و هرچه باشد مگر ما همکار نیستیم هنرمند چطور گفت من سعی خودم را میکنم ولی نمیدانم به دام میافتد یا نه فریاد زدم چه گفتید؟ گفت نمیدانم که میشود جریان را طوری جلو داد که باور کند یا نه من زیاد خیال پرداز نیستم و استعداد و داستان سرایی ندارم. احتیاجی به گفتن این حرف نداشت من خودم شروع کرده بودم او را احمق ترین ضعیفه ای بدانم که تا به حال با او سر و کار پیدا کرده ام گفتم چطور است که شما سعی کنید در تعاد کاری برایم پیدا کنید من نقش های فرعی را خوب بازی می کنم گفت نه نه نه نه هانسه عزیزم من در این فضای پر دوز و دغل گلیم خودم را هم نمیتوانم از آب بیرون بکشم گفتم باشد باشد فقط میخواهم بگویم که از مبالغ ناچیز هم استقبال میکنم خداحافظ و خیلی ممنون و قبل از اینکه بتواند حرفی بزند گوشی را گذاشتم احساس کردم نباید امیدی به رسیدن کمک از این راه داشته باشم او بیشتر از آنچه تصور میکردم احمق بود با لحنی که دام میافتد یا نه را گفت مرا به شک انداخت بعید نبود او این کمک برای همکاران محتاج را توی جیب خودش بریزد دلم به حال پدرم سوخت دلم میخواست معشوقه زیبا و باهوشی داشته باشد هنوز هم دلم میسوخت که چرا نگذاشتم برایم قهوه درست کند این زن احمق وقتی پدرم در آپارتمانش باش پسخانه میرود تا قهوه درست کند شاید لبخند بزند و پشت سر او مانند یک معلم از کار افتاده سرش را تکان بدهد بعد از روی حق بازی قیافش بدرخشد و از قهوه تعریف کند درست مثل سگی که سنگی را می آورد بودم به طرف پنجره رفتم آن را باز کردم و نگاهی به خیابان انداختم می ترسیدم نکند روزی مجبور شوم پیشنهاد زمر ویلد را قبول کنم ناگهان سکه یک مارکیم را از جیب بیرون آوردم و توی خیابان انداختم و همان لحظه پشیمان شدم ردش را دنبال کردم ولی آن را ندیدم خیال کردم صدای برخوردش را با سقف تراموا شنیدم نان کره مالیده را رو از روی میز برداشتم و در حالی که به خیابان نگاه می کردم گازی به آن زدم حدود ساعت هشت بود. تقریبا دو ساعت از آمدنم به بن می گذشت و به شش نفر از به اصطلاح دوستان تلفن کرده بودم. با پدر مادرم صحبت کرده بودم و داراییم یک مارک هم از آن جنگام ورود داشتم کمتر شده بود. میخواستم پایین بروم و در خیابان دنبال سکه یک مارکیم هم بگردم. ولی ساعت هشت و نیم نزدیک میشد و هر لحظه ممکن بود له او تلفن کند یا بدیدنم بیاید. شک ندارم که حال و روز ماری خوب بود. او حالا در رم است، در آغوش کلیسایش، در هتلی نشسته و فکر می کند هنگام بار یافتن به حضور پاپ، باید چه لباسی بپوشد. تسوبنر هم برایش یک عکس از جکلین کاندی، یک شال اسپانیایی و یک روسری میخرد چون ماری حالا چیزی شبیه بانوی نخوست کاتولیکای من محصوب می شود من هم تصمیم گرفتم به روم بروم و از پاپ تقاضای شرف کنم کمی از یک دلقه که پیر خردمند باید در وجود او هم باشد هرچه باشد آرلکن در برگامو پیدا شده است این مطلب را با گنهولم هولم هم که به همه چیز وارد است در میان خواهم گذاشت برای پاپ توضیح خواهم داد که زندگی زناشویی من با ماری در حقیقت به خاطر ثفت نشدن مراسم رسمی ازدواج مورد قبول نبوده و از او استت کرد که مرا موجودی موجدیکس هنری اشتون بداند او چند همسر و مؤمن بود من تک همسر و لامذهب برایش تعریف خواهم کرد که رهبران کاتولیک آلمان تا چه حد خودخواه و جنسند و او نباید گول آنها را بخورد چند تا از برنامه هایم را هم برایش اجرا خواهم کرد. چیزهای قشنگ و سبکی مثل رفتن به مدرسه و بازگشت به <تصفيق> ولی برنامه یک کاردینالم را اجرا نمی کنم ممکن از خاطرش از من برنجد. چون خود او زمانی کاردینال بوده و او آخرین فردی است که ممکن است برنجانمش. همیشه مغلوب خیال بافی خودم شرف شرفیابیم را به حضور پاپ جز به جز برای خودم مجسم کردم. خودم را دیدم که مقابل او زانو زدم و به عنوان یک لاماذهب طلب بخشش نگهبانان سوئیسی دم در ورودی و مردی خیرخواه و نیکندیش کنارم ایستادهاند و یک مقام بلند پای کلیسا گوشه ایستاده و با لبخندی سبک که کمی نفرت در آن دیده می شود به من نگاه می کند این خیالات چنان قوی بود که برای لحظه ای فکر کردم واقعا پیش پاپ رفتم و این وسوسه در دلم افتاده بود که به او بگویم به حضور پاپ شررف یااب شدهام و برایش تعریف کنم که در آن لحظات لبخند پاپ را دیدم و صدای دهاتی و گرمش را شنید و برایش تعریف کردم که چگونه دلغک محلی برگامو تبدیل به آرلکن شده است لئو در این موارد خیلی سختگیر است و همیشه مرا دروغگو مینامد هر وقت به او میرسم و میپرسم یادت میآید که چطور با هم چوبره بره کردیم؟ فریاد میزند ما کی با هم چو کردیم به شکلی احمقانا بسیار پیش پا افتاده با اوست لئو شش 7 ساله و من هشت نه ساله بودم او در استف یک تکه چوب پیدا کرد که از سر تیرک حصار زیاد آمده بود و یک عره زنگ زده از من خواهش کرد با هم چوب رو اره کنیم من از او پرسیدم چرا باید این تکه چوب بیمصرف را اره کنیم؟ او نتوانست دلیل بیاورد فقط دلش میخواست چوب اره کند به نظر من بی ربط و بی فایده بود لعو نیم ساعت تمام گریه کرد و بعدها پس از ده سال سر درس ادبیات آلمان وقتی درباره لسینگ صحبت می کردیم ناگهان در میان درس و بدون هیچ علتی که آن را تدایی کند فهمیدم لعو چه می خواست. او فقط می خواست کند در آن لحظه دلش می خواست با من عره کند ناگهان پس از ده سال سر کلاس درس پدر واینبالد تمام آن چیزهایی را که محرکش بود خوشحالی. میل و هیجانش را درک کردم چنان امیخ که در میان درس شروع به حرکات عره کشی کردم چهره جوان لعورا که از سرخی خوشحالی داغ شده بود در مقابلم می دیدم <تصفيق> زنگ زده را به طرفش فشار دادم و او آن را به طرف من فشار داد تایی که معلممان من واین بالت ناگهان موهایم را کشید و من را به دنیای واقعی برگرداند. از آن روز به بعد من واقعا باله و چوبره کردم ولی او نمیتواند این را درک کند او واقع نیست. است او امروز دیگر نمیتواند بفهمد که یک کار به ظاهر بی فایده را باید سریع و بدون تفکر انجام داد حتی مادر همگاهی گاهی دوچار این قبیل تمایلات شدید آنی می شد این میل که کنار بخاری دیواری ورق بازی کند یا توی آشپزخانه به دست خودش گل سیب دم کند گاهی ناگهان عوض میکرد، سر میز تاز لاک خورده بنشیند و ورق بازی کند و تمام افراد خانواده خوشبخت در صفا و صمیمیت دور هم جمع باشند ولی هر وقت او چنین میلی داشت ما چنین احساسی نداشتیم و او دم از حقوق مادری و اطاعت از فرمان چهم میزد. ولی میدانست بازی کردن با بچههایی که وادار به بازی شده بودند لذتی نخواهد داشت و گریه کنن به اتاقش میرفت و زانوی غم به بغل می گرفتفت. وی وقتها هم سعی می کرد از راه تطمی بچه ها را وادار به بازی کنند و وعده خوراکی یا نوشیدنی های خوب میداد. ولی چون ما از روی میل بازی نمی کردیم، شب تبدیل به شبی پر عشق می که مادر از این شبها زیاد برای ما درست کرده بود او نمی دانست که علت سرپیچی ما وجود هفت دل در میان ورق و بازی ورق ما را یاد هنریت میاندازد. <تصفيق> <تصفيق> یک این مطلب را به او نمی گفت <تصفيق> بعدها هر وقت به تلاشهای ناکام او که دوست داشت در کنار آتش بخاری دیواری نقشه خانواده خوشبخت رو بازی کنیم فکر می‌کردم در خیال با او مشغول ورق بازی میشدم هرچند که بازی دو نفر خسته کننده است واقعا با او بازی می‌کردم. بازی شست و شش یا جنگ من گل سیب دم کرده میخوردم حتی با اصل و مادر در حالی که با انگشت سبابش دوستانه تهدیدم میکرد حتی به من سیگار می میکرد ولی و پشت سرمان اتوتهایش را مینواخت در حالی که همه ما حتی خدمتکاران دانستند که پدر پیش آن زنک است. ماری باید پی به این دروغ های من برده باشد زیرا وقتی برایش واقعی را تعریف میکردم با تردید به من نگاه میکرد حتی در مورد آن پسر بچه ازنا بروک که من واقعا دیده بودمش البته گاه جریان برعکس است و چیزی که واقعا اتفاق افتاده برایم غیر واقعی و غیر حقیقی جلوه میکند مانند این واقعیت که من زمانی از کالن به بون نزد گروه ماری رفتم تا با دخترها درباره مریم باکره صحبت کنم یعنی اون چیزی را که دیگران واقعی مینامند برای من